دو سه ماه زندگی ما بدین نحف گذشت. هر هفته اقلا یک بار و گاهی بیشتر او را میدیدم. روزهایی که امید دیدار او را نداشتم دلم خالی بود. نمیدانستم چگونه وقت خود را پر کنم. هر آن منتظرش بودم. در خیابان که هرگز در آن آمده شد نداشت، در ساعتی که سریحاً میدانستم مشغول کار است. در خانه که اصلا صاحبان آنها را نمی شناخت. همیشه منتظرش بودم و موجزه ها خود تصور می کردم. تا به این نتیجه منتهی شود که من به دیدار او نائل می گردم. در صورتی که از همان ماه دوم کارهای زیادی به من رجوع می کرد. من با ذوق و شوق بیان که کمترین ترس به خود راه بدهم آنها را انجام می دادم. به من دستور داد که ماشین نویسی یاد بگیرم. آخ چه کار خسته کننده است این ماشین نویسی کشنده است اما من یاد گرفتم سه هفته تمام روزی 7 ساعت کار می کردم من از پشت کار خود در شگفت بودم اما این تنها راهی بود که برای من در زندگی باقی مانده بود وقتی ای را که من ارجاع شده بود انجام می دادم می دیدم که خوشحال است و این خوشحالی او برای من مایه زندگی بود مرا سر شغل میآورد. وقتی ماشین نویسی یاد گرفتم نامه ای من دادو از من خواهش کرد که 500 نسخه از آن رونویس کنم. روزی که میخواست نامه را به من بدهد با او در سینما ملاقات کردم. به من گفت: « نامه ای به شما بدهم که 500 نسخه از آن ماشین کنید. گفتم: چه خوشحالم از اینکه بالاخره به من کاری می دهید. گفت: میدانید که کار بسیار خطرناکی است گفتم ماشین کردن که دیگر خطر ندارد؟ گفت این نامه را منتشر خواهند کرد و اگر بفهمند که ماشینش را شما کرده اید شما را می گیرند و آن وقت خیلی بد خواهد شد گفتم من حاضرم بدهید به من همین الان بدهید گفت همراهم نیست؟ خیانت میکردید که من ابا خواهم داشت از اینکه دستور شما را انجام بدهم؟ گفت نه میدانستم که قبول خواهید کرد میخواستم با این به خطری که در این کار است اقدام کرده باشید قرار شد که همه شب کسی نامه را به خانه من بیاورد مد نامه خوب یادم هست شاه میخواست در نزدیکی تونکابان املاکی را که قسمت عمده آن مال خورده مالکان بود بخرد مامورین املاک به دهات ریخته بودند و مردم را به زور به محاذیر می‌بردند و از آنها امضا می‌گرفتند عدهای از دهقانان پیش از اینکه نوبتشان برسد شبانه از تالکابان فرار کردند و به تهران به خانه یکی از قضات عادی رتبه که از های آنها بود و خودش هم چند جریب زمین داشت پناه بردند قاضیچاره این نداشت جز اینکه از دست معمولی املاک به شخص شاه شکایت کند. این نامه که قریب پنجاه سعت بود نمیدانم به چه وسیله به دست استاد افتاده بود. من از این نامه 500 نسخه ماشین کردم و به به قرار قبلی یک شب ساعت ده موقعی که همه در خانه ما خوابیده بودن مردی که حتی روی او را هم توانستم ببینم چند تلنگر به شیشه اتاق من زد و من طبق دستوری که داشتم نامه ها را چند نوبت به او دادم و او برد چند روز بعد یکی از همین نامه ها برای پدرم رسید پدرم که از ماشین ویسی یاد گرفتن و ماشین کردن من مشکوک شده بود دو سه روز بعد سر شب نامه ای را به من نشان داد و گفت دیدی روز پست برای من چه آورده است؟ گفتم نه آقا جان بدهید بخوانم چیست؟ گفت؟ حالا باشد موقعی که به اتاق خوابم رفتم پدرم دنبال من آمد در را باز کرد و گفت لازم نیست نامه را بخوانی تو خودت آن را ماشین کرده ای. جوابی ندادم چون این کار ممکن بود. دختر من. با بازی میکنی، حیثیت شرافت من رو به باد میدهی، اینجا فرنگستان نیست. کی تو را به این کار وامی دارد؟ گفتم هیچکس کس آقا جان، اما حیثیت شما سر این ها از بین نمی بر برعکس بیشتر می شود. گفت خودت می دانی، همینقدر بهت بگویم که این کار عواقب وخی می دارد. از پیروز که این نامه منتشر شده تا به حال حداقل 300 نفر را در شهر تهران گرفتند. وزیر پست و تلگراف سر انتشار این نامه عوض شده. شاه بهش فوش داده و گفته برو خانت بخواب. صخب از تغییر رئیس نظمی است. اگر بفهمند که در این خانه ما ماشین تحریری وجود دارد تا فردا این خانه را با خاک یکسان کنند اینهایی که گفتم اقراق نیست. قبل از اینکه به اتاق تو بیایم ماشین تحریر را خرد کردم و در آب انبار و چاه انداختم تا هیچ اثری از آن باقی نماند. ابتدا با حساب و ترس حرفهای پدرم را شنیدم. آن وقتی که گفت ماشین تحریر را شکسته و از بین برده دیگر اختیار از حسستم در رفت. خون صورتم را یکباره سرخ کرد. قلبم گرفت. رنگم پرید و تشنجی که تا آن موقع برایم بی سابقه بود به من دست داد. وقتی چمش باز کردم دیدم پدرم در اتاق نیست و مادرم پهلوی من نشسته و در اتاق بوی والیریان می آید. من همیشه گرفتار ضعف اعصاب بودم همیشه حساسیت فوق العاده مرا آزار میداد است اما شب نخستین بار بود که حالت حمله به من دست داد روز بعد اول صبح وقتی پدرم آماده بود که از خانه بیرون برود تنها گیرش آوردام به او گفتم آقا جان ماشین تحریر را چه کردید؟ جواب داد گفتم که انداختم توی آبنبار گفتم آقا جان برای حفظا به روی حیثیت شما من از پول خودم همین الان یک ماشین تحریر دیگر میخرم اما این را بدانید من دختر بزرگی هستم اگر بخواهید به من زندگی را سخت بگیرید و مرا در کارهایی که میکنم آزاد نگذارید همین امروز از خانه شما میروم پدرم نگاهی پر از ترس به من انداخت چیزی نگفته از خانه بیرون رفت فوری به او تلفن کردم و از او وقت گرفتم قرار شد شب موقع معمول همدیگر را دم در سینما ملاقات کنیم. حوادث شب پیش را برایش نقل کردم مفصل آنچه را با پدرم رد و بدل کرده بودم گفتم و اشاره کردم که میخواهم از خانه بیرون بیایم و نمیدانم تکلیفم چیست ته دلم آرزو میکردم و امیدوار بودم که او اگر مرا به خانه خود دعوت نکند اقلا موافق باشد که خانهی برای خود ترتیب بدهم و آنجا بتوانم گاهی او را تنها ببینم و گفتم که پدرم مرا مرا بیاندازه دوست دارد و حتی اگر از خانه او هم قره کنم باز حاضر است. مخارج زندگی مرا آبرومندان آبرومندانه تأمین کند اما استاد سرک تکان داد و گفت نه برعکس حالا معلوم شد که این خانه پناهگاه خوبی نه فقط برای تو بلکه برای همه ماست من حالا بیشتارت میان پیدا کردم او حالا با تو سری دارد البته می ترسد. همه می ترسند. بعضی کمتر، بعضی بیشتر، باید او را تدریجا وادار کنی. پدر تو هم یکی از آن کسا نیست که املاکش را در مازندران از دست داده و از آنچه او در تهران در عوض به دست ساعده یک پنجم داره سابقش نیست. بنابراین از ته دل با مبارزین ما همداستان است. باید در این خانه بمانی و با پدر از گمب بگیری و اینطور، کارها را در خانه دیگری که به تو نشان خواهم داد انجام بدهی پدرت آدم است.